از آن پس خدایان سامی که خدایان بابلی نیز در آن زمره و خدایان ایرانی و یونانی همه با یک نام خوانده شدند. اهورامزدا با بعل و میترا، مهر با شمش و آناهیتا با ایشتر یا ننه نه برابر گشتند. پس آپالوی یونانی را با خطاب مارا که عنوان سریانی خداوند است خواندند. هرقل معمولا وجهی هلنیستی برای نرگال سامی بود یا ورسرغنهی ایرانی و آتنه برابر بود با الهی الات عربان در خدایانی که مجسمه های آنان را نظر آرامگاه آنتیوخوس اول کوماجن 69 تا 34 قبل از میلاد کردند این گونه در بارز است مجسمه اصلی از آن زئوس اورمزد و مجسمه دومی از آن آپولو میترا هلیوس هرمس و سومی متعلق به آرتاگنس یا ورس رقنه هرقل عرس است اینان به سوی ادغام شدن در قادری متعال پیش می رفتند که تصوری از خورشید در آن بود. کالج 1380 صفحات 90 تا 97 گردآوری اوستا را به بلاش اشکانی نسبت می دهند. گفتند که کتاب اوستا بر دوازده هزار چرم گاو به خط زر نوشته شده بود و در دژ نبشت آن را نگاه می‌داشتند. اسکندر گجسته همه را سوزانید. از آن پس اوستا جز آنکه در یادها مانده بود، همه از میان رفت. بلاش اشگانی آنها را از هر گوشه آورد و تدوین کرد اردشیر بابکان و جانشینانش به تکمیل کار بلاش پرداختند بخش نخستین این قول را به ویژه اغلب افسانه می شمارند. آنچه می توان به یقین گفت گرایش اشکانیان از آغاز هزاره اول مسیحی از یونانی معابی و هلنیسم به سوی ملیت و فرهنگ ایرانیست مرسکه مهرداد اول 171 تا 137 قبل از میلاد و دیگر پادشاهان نخستین اشکانی عنوان دوستدار یونان و خط یونانی دیده می شود. ولی اردوان سوم حدود دوازده. 1338 میلادی این کلمه را از سکه‌های خود برداشت از زمان بلاش اول حدود 51 تا 80 میلادی حروف آرامی در پشت سکه ها جایگزین حروف یونانی شد کالج 1380 صفحات 65 و 66 بدین شمار اینان ملیت ایرانی را بیشتر گرامی می داشتند و شکل گیری کیش زرتشتی را به روال عهد ساسانیان به همین زمان می توان بازگشت داد دو موقعن در فرهنگ فارسی معین، مو، های موغ، مقان، موبد، هیربد و مدروس آمده است. این فرهنگ موغ را فردی از قبیله موبد زرتشتی، زرتشتی به طور عام معنی کرده است. در زیل سرواژه موغ یا مقان در بخش اعلام می‌آورد، مقان در اصل قبیله‌ای از قوم ماد بودند که مقام روحانیت منحصراً به آنان تعلق داشت. آنگاه که آیین زرتشت بنواهی غرب و جنوب ایران، یعنی ماد و پارس مست شد، مقان پیشوایان دیانت جدید شدند در کتاب اوستا نام طبقه روحانی را به همان عنوان قدیمی که داشتند یعنی آترون می بینیم. اما در عهد عشقانیان و ساسانیان معمولا این تایفه را مقان می خندند. فرهنگ فارسی همچنین موبد را روحانی زرتشتی و موبد موبدان را رئیس موبدان و دارای بزرگترین درجه موبدی و روحانیت در کیش زرتشتی خوانده است موبدان یا به اصطلاح امروزی زرتشتیان، دستوران روحانیون زرتشتیاند که فرزندان خاندان آنها این سمت را عهدهدار میگردند. می‌گرفتند. برگزاری همه آینهای دینی و رهبری روحانی جامعه با آنان بوده و هست. مقان را از دیرباز پیشوایان دینی زرتشتی دانستند. پورداود 1356، یسنا جلد یک صفحه 75، معیری 1381. اینان آینهای مقدس ویدنگرن 1377 صفحات 163 و 164 و صفحه 108 و و جزء اینها کالج 1380 صفحات 88 تا 91 را برگزار می‌کردند و در علم دین و احکام قضایی و نیز مطلق علم و دانش تبحر می‌یافتند از مشارکت مقان در یکی از دو شورای کشوری در زمان اشکانیان آگاهی در دست است این خاندان ها که نام فرزندانشان را مثلا در قرن سوم هجری بر کتاب های معتبر و مهم پهلوی میبینیم و سپس در کتابی چون روایات داراب هرمزیار از آنان خبر داریم تا امروز حافظان فرهنگ مكتوب و نیز سنت ها و آین های زرتشتی و تا حدی هم احتمالا مبدع بسیاری از آنها بودند و البته هم چون نویسندگان کتاب های فقهی و پدیدآورندگان فقه پرتفصیل زرتشتی موقع نامبرداری که به رقم بیمهری رقیبانش و نسیان تاریخ از فراسوی گذر زمان و کشاکش ابنای روزگار افراشته است کرتی است وی ای عمری دراز داشته و در دوران نخستین شاهان ساسانی دست به اقدامات دینی مهم می زده است. مثلا ویدنگرن 1377، صفحات 362 و 363. در صفحه 34 تصویری از نقش برجسته ای از دوره اشخانیان درج شده است. از کتیبه های ویبین اقدامات می توان پی برد. کرتیر برای آتشکده ها و روحانیون آنها مقرراتی پدید آورد و انوالی وقف کرد آتشکده ها برپا کرد و به تعقیب و آزار پیروان دیگر ادیان پرداخت ویدنگرن 1377، صفحات 379 تا 384 که در رأس آنها قتل مانیست. به نظر می نسبت که اقدام مهم دیگر وی تغییر دادن راه و رسم برگزاری آداب و رسوم دینی و تثبیت آن روشهایی باشد که مورد نظر و تایید خود وی و همراهان و هم‌رایانش بوده است شاید این قول که با سفر به جهان دیگر نتیجه کردارهای دینی را به چشم دیده و نتایج آن کارها بر وی آشکار گشته است به همین اصلاحات و اعمال نظریات خاص و تغییر که در روشهای نیایش پدید آورده است بازگردد تفضلی 1370 از کرتیر و نام ویجاز در کتیبه های خود وی اثری نیست اما نام آدورباد مارسفند موبدان موبده دربار شاپور دوم، پورداوود خرد 1310 صفحات سی تا چهل امروز هنوز در اوستای رسمی زرتشتیان یاد می شود. فهرست بلندی از نام موبدان را می شود برش که بسیاری از آنان پدید آورندگان کتابند به ویژه در قرن سوم هجری یکی از مشهورترین آنان منوچهر پسر جبانجم یا گوشنجم نام پدر منوچهر را به دو شکل می شود خاند. در قرن سوم هجری رد یعنی پیشوای روحانی فارس و کرمان بود است وی برادر خود زاد را به جرم بدعت و آوردن شیوه های تازه در آداب تطهیر برشنوم تکفیر می کند. این منازعه می گرته و نشانه کلی از گیرودارها و جدالهایی را بروز دهد که همواره در میان موبدان پیش می آمده. و نیز به احتمال همان موجب شده است که نام کرتیر از همه نوشته ها و آثار پهلوی موجود حذف گردد. البته جز کتیبه های خودش. دردین شمار مقان به سان جریانی اجتماعی تاریخی و نه افرادی و خاندانهایی منفرد در درازنای تاریخ حامل فرهنگ و بسای که موجد آینها و رسمهای فرهنگی و شیوه های آینی بودند گرچه شاید اقراق باشد اگر ادعا شود که همه آثار بازمانده به پهلوی کتابی از موبدان است اما به یقین باید پذیرفت که همین خاندانهای سنتی و پایبند به دلبستگیها و علاق نیاکانی با مداومت و ایمانی فراتر از قدرت انسانی به حفظ نوشته ها و نیز آینهای دیرینه پرداختند اینان با نوشتن و سپس رو نویسی کردن کهنک تاب و آنگاه انتقال آنها به هندوستان برای بازماندن و بازخانی و زندگشتن این یادگارهای احسار و قرون راهی گشودند. اشق و زحمت و جانبازی آنان را قطعا باید مایه و پایه حفظ و تداوم سنت نیاکانی فرهنگ ایرانی دانست. گرچه در قرون اخیر فرسودگی و رنج دامان آنان را سخت گرفته بوده است، اینان آگاه ترین کسانی بودند که دانشی موروسی و فرهنگ عظیم را به دنیای کنونی ارمغان کردند. در زمانی که زبان‌های یونانی و لاتین و سانسکریت در مدارس و مکاتب بزرگ تدریس میشد، همین چشمه‌های بی‌عینک در پای شمع جان زبان اوستا و پهلوی را در خانه‌های موبدان یزد و کرمان حفاظت کرده است. 3. دین در ایران ساسانی اشکانیان نسبت به ادیان مردمی که در شاهنشاهی پهناور آنها میزیستند با نظر احترام و تساهل می مینگریستند و خدایان و پیروانشان با حاکمان ایرانی از این دیدگاه ارتباطی خیرخواهانه و دوستانه داشتند از همه شواهد برمیآید آید که پارتیان نمیکوشیدند تا دین خود را در میان اقوام مغلوب رواج دهند گیرشمن 1368 صفحه 323 اقماز اشکانیان مخصوصاً در روابط آنان با قوم یهودی آشکار است یهودیان شاهان اشکانی را مدافع دین خود می دانستند بعدا هم فرقه یهودی بابل برای آین زرتشت و دولت ایران خطری محسوب نمی شدند. وضع سبیان با آنان بسیار اختلاف داشت. از دوران اشکانیان دولت ایران در جنگ‌های خود با روم، اسیران را که مسیحی بودند، در نواحی دوردست کشور ایران مسکن می‌داد. پادشاهان ایران در های خود به سوریه، گاهی تمام سکنه یک شهر یا ناهیه را می‌کوچاندند و در یکی از نقاط داخلی کشور موقئم می‌کردند. قسمت اعظم این مهاجران ایساوی مذهب بودند و بنابراین دیانت مسیح در هر گوشه ای از ایران اندکی رواج یافت. مسیحیان همکیش دشمنان رومی ایران بودند و پیوسته بیمان می رفت که ضد ایران دست به توطعه و اقدام زنند. درباره آنان همواره قول شاپور دوم صادق بود که نوشت آنها در مملکت ساکنند و دوست دار دشمن ما قیصر هستند. کرستنسن 1370 صفحات 364 و 365 به چون این و نیز تبلیغات دینی سرسختانه تعقیب و آزار آنان صورت می گرفت. البته این سختگیری و تعدی در دورانهای مختلف یکسان نبود و منطبق با رفتار خود ایسابیان و یا طبع شاهان به اوج می رسید یا فرو می نشست. جز یهودیان و مسیحیان پیروان مانی وفات 241 میلادی و مزدکیان نیز در ایران آن روزگار می زیستند. چهار آین زرتشتی در عهد ساسانیان کیش زرتشتی شن که در عصر ساسانیان به دست مقان روحانی و در چونین کشاکشی از اختلاط عقاید و باورها شکل گرفته بود اینک دوام آورده است سلایه و سه سازنده متفاوت را در آن میتوان باز شناخت بخش و لایه نخستین و بنیادین آن آموزش های ساده و اخلاقی گاهانی که پیام آسمانی زرتشت است. دومین لایه و بخش از آن بازمانده است که دینی پیش از زرتشت است که بخش مهمی از آن را اشتراکات میان آین کههن هندووان و ایرانیان می سازد. این بخش خود مرکب است از ایزدان، آینها و باورها و مفاهیم جمعی دیرینه. بر این بخش باید ای را هم اضافه کرد و آن وامگیری از دیگر ملل و ادیان همسایه و بیگانه است. بخش سوم در واقع حاصل ترکیب و مجموعه فعل و انفعال میان این دو بخش است که مقان روحانی نیز چیزی بر آن افسوده و آن را به شکل اصول آین و فقه مقانی درآوردند. منابع و معاخذ برای بازیافتن این مجموعه را به طبعیت از زبانهای ایرانی ابوالقاسمی تا پایان دوران ساسانیان میتوان در دورانهای باستانی و میانه برشمرد گروه یکم از این منابع که با زبان باستانی اوستایی به کتابت درآمده است و گروه دوم را اصولا به زبان پهلوی فارسی میانه زرتشتی یا پهلوی کتابی در اختیار داریم آثاری جنبی هم از نویسندگان خارجی در این باره باز مانده و یا آگاهی‌های از مدارکی چون کتیبه های ساسانی و مهرها و سکه‌ها در دست است که به نوعی اطلاعی تکمیلی به دست می‌دهد. به دنبال اینها پس از دوران ساسانیان هم به زبانهایی جدیدتر و نیز به فارسی آثاری در دست است که به کیش زرتشتی و باورهای آن می‌پردازد. اما این هر دو بخش باستانی و میانه را در واقع باید مجموعه واحدی به شمار آورد زیرا همواره در متون آثار پهلوی به دوران باستانی اوستایی اشاره و به آن تکیه می شود به بیان دیگر در حقیقت از دوران ساسانیان است که هر دو بخش بر جای مانده و در این دوران مرتباً به آثار دوران باستانی اشاره و به آنها ارجاع و استناد شده است آنچه به زبان فارسی درباره باورها و آینهای زرتشتی به نگارش در آمده طبعا به دوران پس از ساسانیان و با تکیه و ارجاب آن نوشته شده و در آن همواره دو بخش باستانی و میانه منظور است نرباره پیام گاهانی زرتشت گفت شد در اینجا به ذکر این نکته باید پرداخت که بازمانده های دینی پیش از پیامبر برای درآمدن به مجموعه باورها و عقاید آین زرتشتی، در دوران ساسانیان در واقع صافی و گذار پیام گاهانی زرتشت گذشتند و پالایش و تصفیه شدند. این تصفیه در حقیقت هر سپار از این تصورات و اندیشه ها را پالایش داده و دیگرگون نموده است. یعنی نخواست خدایان دوران عتیق را به ایزدان بدل کرده و دیگر اینکه که آینها را منطبق با بافت جدید دینی ساخته و نیز سوم باورهای قدیمی را رنگی تازه و متناسب با این مجموعه زده است. در این گذار که به زن قریب به یقین دستکاری فقیهان و روحانیون مقصد در نهایت ترهی برای رفتار ر مردم پدید آمده است که خصایص ویژه آنها را شود ترسیم کرد از آنجا که این نوشته به ایرانیان زرتشتی در دوران معاصر می‌پردازد ناگزیر تحولات پس از روزگار ساسانیان نیز در آن جایی متمایز دارند هنگام سنجیدن خدایان هندی و نیز یونانی و رومی با ایزدان ایرانی میتوان به نوع پالایشی پیورد که در این راهگذر روی داده است در این هرسه یزدانکدهی خیشاوند خدایان داستان زایش و رشد و عشق و ازدواج دارند با همه اقتدار برتر دست به رفتاری میزنند که گاهی پسندیده و منطبق با معیارهای اخلاقی نیست در نهایت کردارهای آنان را می در تصاویری قابل رؤیت در های عادی زمینی رسم کرد و داستانهایی از آنها پرداخت این خصایست در نزده ایزدان ایرانی دیده نمی شود به ویژه دو خصیصه نخستین اینان ذاتی مجرد و انتزاعی دارند و اگر مثلا از نسبت پدری میان اهورامزدا و بهمن سخن میرود، محض ارتباط میان آفریدگار جهان و اندیشه نیک است و نه چیزی افزون بر آن. ای زدان که جزی از نظام آفرینش اویند، مظاهر اراده خداوند هستند و قادر به داشتن جلوهی ضد اخلاقی نیستند. برای مثال می شود ایندره هندی و بهرام ایرانی را مقایسه کرد تا جایی که به سلاح که نماد قدرت است باز میگردد بهرام هم مسلح است با این اختلاف که سلاح ایندره آزرخش است و این خصیصه در دشنگ بهرام دیده نمی شود ایندره شیفته هوم است و سه دریاچه و گاهی سی دریاچه از این نوشابه خدایان می نوشد و یک و گاه سیصد گاومیش را یک باره از پهلوی مادر به دنیا می آید و با ورطره دیو خوشک سالی می جنگد همسری به نام ایندرانی دارد بهار 1376 صفحه چهار در ابستا هنوز تجلی دهگانه بهرام در کالبد باد تند گاو نر زیبا اسب سفید زیبا شطر سرمست گراز تیز دندان مرد پانزده ساله نورانی مرغ شاهین میشه گشندشتی بز گشندشتی مرد درخشان زیبا بر جای است بهرام یشت، بندهای دو تا بیست و هفت ولی این تجلی برای دادن یاوری و سود به جهانیان است بررسی دست نویس میم اوه بیست و 5 قطعه پنج صفحه دویست و هشت هنگام نیایش برای او هوم آمیخته به شیر و برسم میآورند با زوهر و با سارود گشت بند پنج اما در بندهش وی فقط درفشدار ایزدان بندهش صفحه 112 و نماد پیروزی جهان خیر بر شر است. سپس در زند یعنی ترجمه و تفسیر عوستا زبان پهلوی نام وی فقط به پیروزگر و پیروز برگردان شده است. به همین روال هنوز در اوستا در آینهای کهان آن بازمانده ستایش ایزدان همراه با قربانی های خونین دوران پیشین یعنی کشتن ده هزار و هزار گاو و اسب مثلا آبانیشت بند بیست و یک دیده می شود که به نظر می‌رسد ارقامی از واقعیتی دوردست و تاریخی باشد اما این کشتارها در دوران مشون پهلوی جز صوت و حرف نیست در نیرنگستان و روایت پهلوی روایت پهلوی 1367 صفحه 75 فقط سخن از قربانی کردن یک حیوان است برای خوردن در یک وعده میزد و ضیافت دینی و نه بیشتر همچنین دیگر اجزای آینهای مقدس و تطهیرهای دینی رنگی متناسب با حیات اجتماعی و زندگانی مادی در جامعه شهری و روستایی باستانی به خود گرفته و از حالت شبانی جنگی دیرین درآمده است درگاهان و در سراسر اوستا و نیز کتیبه‌های های حخامنشیان و سراسر متون پهلوی و فارسی زرتشتی اهورامزدا یا هرمزد خدای آفریننده جهان و خداوند بزرگ است. همچون فرشتگان و ملائک سامی، امشاسپندان و ایزدان برگرد او هستند که همه مظاهر وجود پروردگارند. درگاهان شش امشاسپند معانی انتظائی هستند که دلالت می کنند بر مفاهیمی مجرد. واژه امشاسپند نخستین بار در هفت خاط می آید که به لهجه گاهانیست و سپس امشاسپندان از شکل معانی اخلاقی و انتزائی آغازین در گاهان به صورت مفاهیمی متجسم و پیکرباره در آمدند. این اسطوره ها به خوبی آمادگی داشتند که با خدایان بازمانده از دوران کهن دینی پیش از زرتوشت در هم آمیزند. تعبیر دیگر آن است که چون خدایان کهنه هند ایرانی به علت ارج و حرمت بسیار در نزد مردم خلاف آرای زرتوشت بازمانده بودند، مفاهیم مجرد و انتظائی جدید در پیام زرتوشت را برنتافتند و آنها را به رنگ خیش درآوردند. از مجموعه شواهد برمیآید که فعالیتی گروهی و دانسته و آگاهانه میان آموزش های زرتاشت و کهن دینی پیش از پیامبر تلفیقی پدی داورد است آینه زرتشتی در مطون پهلبی را باید دستاورد این تحول دراز مدت دانست که مثلا در بندهش 1376 صفحات 146 تا 155 آن را در یکی از نمایانترین صورت‌های مختصر و منسجم خود میتواندید در رأسه یزدانکده دادار هرمزد آفریدگار و فرجام بخش هستی حضور روشن دارد پس از وی شش امشاسپند بهمن و اردی ششت و شهریبر سپندارمز و خورداد و امرداد جای میگیرند. اینان شش امشاسپند هستند که با خود هرمزد شمارشان به هفت می رسد. عدد هفت که مقدس است، گاهی از مجموعه شمار شش امشاسپندان و سروش یا بهرام نیز پدید میآید. هر هریک از اینان که مقامی چون ملائک مقرب سامی دارند در رأس گروهی میآیند که به نوعی با وظایف و کنشه هریک از آنان در نسبت است. سه امشاسپند نخستین مذکر و سه تای دیگر معنسند هریک از امشاسپندان دارای مایملکی در گیتی یا جهان مادیست شایست ناشایست فصل پانزده و گلی نماده اوست مایملک دنیوی بهمن امشاسپند جانور سودمند است بهمن با ماه و گشورون و رام گروهی را میسازد. آتش از آن اردیبهشت. امشاسپند است و همکارانش ایزد آزر و سروش و بهرامند. در گیتی فلز به شهری امشاسپند تعلق دارد و هور و مهر و آسمان و انقران همکاران اویند سپندارمز امشاسپند را خیش و مایملک گیتی زن پرهیزگار و زمین است و آبان، هوم، دهمان آفرین، دین، ارد، اریامن، مارسپند و نریو سنگ را به همکاری دارد خرداد سرور آبهای گیتی است و همکارانش تیر باد و فروردینند در گیتی گیاه خیش امرداد امشاسپند است و یارانش رشن و اشتاد و زامیادند به همین روال در گیتی مرد پرهیزکار را نیز هرمزد به خیکشی دارد. هرمزد هم دارای همکارانیست است که دی به آذر و دی به مهر و دی به دیند. دی به معنای آفریننده است و در واقع همان نام آفریدگار و خود هرمزد است. اینان چیزی جز نام دادار هرمزد نیستند که برای نامیدن سیروز روز و در هر ماه به کار رفتند و آذر و مهر و دین نام روزهاییند که هر یک از سه دیروز قبل از آنها میآید در اینجا نکته مهمی درباره شماره ایزدان مطرح میگردد و آن تأثیر تقویم است در شماره آنان زمان یا زروان و اهمیت آن در آین زرتشتی به شکل دوران ساسانی مبحث خاصی است و بسیاری از نوشته های مهم پهلوی و آغاز و فرجام جهان بنابراین آثار با مفهوم زمان در ارتباط و پیوستگی تام است بدین شمار است که برخی از این ایزدان تنها نقش نامیدن یکی از روزهای ماه دارند باننده مارسمند یا مانترس پند که فقط مینو یعنی صورت معنوی و ذهنی و مثال افلاطونی کلامه مقدس است بهار 1376 صفحه 153 این مجموعه را می توان تقویمی نامید در برابر ایزدان که شماری بیش از این دارند با مجموعی از دیوان نیز روبرو میشویم که نماد و مظهر صفات بد آدمیان یا بلایای طبیعی و انواع شر در این آلمند. بهار 1376 صفحات 166 تا 170 برخی از آنها سابقه درازی تا دوران هندو ایرانی دارند و برخی دیگر بیشتر به گاهان زرتشت باز میگردند. در گاهان از دیو خشم به ویژه نام برده می شود که زرتشت هنگام بازداشتن آن اندیشه نیک را ذکر می کند یسن 48 بند 12 در بندی داد که فقرستی بلند از دیوان در فرگرد یا بخش 19 آن می در رأس دیوان آز جای دارد برتری دیوآز در اساطیر زرتشتی بنابرmotion پهلوی و در فرجام شناسی آن گزیده‌های زاد اسفرم فصل 34 بهار 1376 صفحه 283 روایت پهلوی دیده می‌شود از داستان آفرینش و فرجام جهان نشانی اندک در اوستای موجود بر جای است گرچه در اوستای گم شده که ترجمه بخشهایی از آنها باز مانده است می‌توان آثاری از آن را باز یافت بنابر این داستان بهار 1376 فرگرد نخست آفرینش و فرگرد سوم فرجام در آغاز هرمزد بود و اهریمن هرمزد روشن و فرازین و همه آگاه یعنی دارنده علم مطلق بود و اهریمن تاریک و فرودین و پستانش معنای پستانش این است که علم را بعدن و هنگامی که به کارش نیاید خواهد یافت. این دو در آغاز جدا بودند. عمر آفرینش دوازده هزار است و در این زمان کرانمند و محدود آفریدگان هرمزد و اهریمن هر دو پدید آمدند و هستند و آمیختگی خیر و شر در شش هزاره دوم از دوازده هزار سال روی داد است. سپس در پایان زمان با نابودی شر اهریمنی باز خلوص و عویژگی به هرمزد و آفرینش وی باز خواهد گشت. آن زمان بهشت برین بر روی زمین خواهد آمد و معاد جسمانی یا تن پسین خواهد بود. اینک ما در دوران نبرد و آمیزش خیر هرمزدی و شر اهریمنی به سر میبریم. گرچه فرمان تقدیر و احکام ستارگان بر زندگانی و مرگ آفریدگان روایی دارد ولی انسان را در این جهان بینی اختیار و قدرت گزینش است. در آغاز آفرینش فروهر که جزء آسمانی و ازلی و ابدی وجود انسان است طرف مشورت هرمزد واقع شد. و به خواست خیش رنج زادن و درد زیستن و مرگ را برگزید تا به هستی روشن و خیر هرمزدی رساند بهار 1376 صفحه 74 نخواستین انسان و انسان قدیم کیومرس است و وی تصور انسان کامل است آدم و حوای زرتشتی مشی و مشیانه نام دارند پانویس در متن‌های فارسی و عربی این شکل برای این دو نام به صورت جدا از هم و نه در کنار یکدیگر آمده است ادامه ی متن از این رو در اوستای کانونی خبری نیست ولی در کتاب‌های تاریخی فارسی و عربی نام آنها با گونه‌های مختلفی مانند مشی و مشیانه، محلی و محلیانه، مهری و مهریانه، مردی و مردیانه و جز اینها آمده است مردم همه از نسل اینانند بهار 1376 صفحات 1726 تا 179 مشی و مشیانه مانند ریواسی از نطفه کیومرث از زمین روییدند و هر دو به هم پیوسته و دارای قد و شکل یکسان بودند کیومرس نخستین پذیرنده دین در جهان مادی است و مردم را که فرزندان اویند بهترین کاری است که در این زمانه آمیزش بدی با نیکی، نیکی را برگزینند و گزیدار خیر هرمزدی باشند و با شر اهریمنی بجنگند. این است تکلیف مردم در گیتی. نموتون فارسی زرتشتی و حتی نوشته های پهلوی همین مفاهیم و باورها میآیند با این اختلاف و توضیح که اولا شکل اساتیری و قاطع آنها به تسبیت رسیده است. ثانیا جدالی مانند آنچه در کتاب نامه منوچهر دیده می شود دیگر مطرح نیست. سالسا در بنیاد و جرفای سخن همان آموزش های اسیل گاهانی را به صورت پیامی نهانی و گردان سرشته دارند. این میزدان به ویژه در متون متأخر با آینهای مقدس و مراسمی در پیبند قرار گرفتند که برگزاری آنها تکلیف شرعی مؤمنان به شمار می آید. موبدان در این ادوار تازه پیوسته به سنت نیاکانی و حفظ و نگاهداری آن پایبند و مقید هستند و میکوشند، وفاداری را به حد اعلای ممکن برسانند. گرچه بیگمان چون این امری تماما میسر نیست ولی کوشندگی و تلاشی شایان در این راستا به چشم میخورند. کتاب اوستا و نیز متون پهلوی هموار مورد رجوع قرار میگیرند و حتی نوشته های مکتوب به فارسی زرتشتی آنها را پیوسته منظور میدارند. از همین آثار متأخر به خوبی آید که سنت شفاهی بسا بیش از کتابت و نوشته نقشمند است و گرچه میدانیم که نوشته ها چه آسان بر باد رفتند، نقش و ارزش آنچه را موبدان شفاهن در راهنمایی مردم و راهبری جامعه گفتهاند هرگز نمی شود انکار کرد. در صفحه چهل و پنج تصویری از بنای مشهور به کعبه زرتشت در نقش رستم وجود دارد.